پیرمردی را گفتند چرا زن نکنی، گفت با پیرزنانم ایشی نباشد، گفتند جوانی بخوا چو مکنت داری، گفت مرا که پیرم با پیرزنان الفت نیست، پس او را که جوان باشد، با من که پیرم چه دوستی صورت بندد؟ پیر هفته سلن جونی میکنه، عشق مغری فخی و بونی چش روشت زور باید نظر که بانو را گذری دوستتر که دهمن گوشت